بسم الله الرحمن الرحیم الخامس رسیدین بین موتل لوئه پنجام المعتلول فائی واللام موتلول الفاء واللام اون موتلی که اون فعلی که هم فاđل فعلش و هم لام الفالش حرفه الله داشته باشد ویقالو له لفیف المفروخ بش لفیف مفروخ گفته میشه لفیف بش گفته میشه بخاطرین که دوتا حرفه الله داره اصلی مفروخ گفته میشه بخاطرین که بین دو حرف فاصله است فتقول منند وقا واقع... این وقا واقع... لفیف مفروق هست بین و و حرف الف فاصله در اصل بوده وقا يا... یا متحرک ماقمت تو تبدیل به الف شده این نقطه رو باید عرض کنم قواعد مثال و قواعد ناقص در لفیف مفروق اجرا می شود مثال و لفیفه و ناقص مزارش بخاطرین این میشه یقی چرا در یقی واو هست شده چون ما در مثال اگر یاد طول باشد خوندیم که هرگاه برواز نیف باشد واو در مزارش مثال واغی هست میشه مانند وعده یا اینجا هم میشه و قاعده. پس قاعده ی مثال در اجرا شد و قاعده ناقص هم در اجرا میشه در مزاره ما گفتیم که در ناقص حرکت از آخر هست میشه ساکن میگیره یقی ساکن داره وقا وقايا وقو قاعده ناقص در شجره شد و قیو که شد و قو در مزاره هم هست یقی یقیانی یقیون که میشه یقونه ثقي تبي ثقياني یقینا این توضیحاتی که قبلا رد شدن ثقي تبي ثقياني تقيونہ که البته یا حسب میشه چون جمع مذکره میشه تقونه ثقينا ثقيانك فينا اقي نقي چند تو فعل داریم تقينا و تقينه تقينه و تقینا اینا درس الله لفظی مثل همان ولی الله تقدیری با هم فرق دارن همان طور که در بحث ناقص گفتیم عقی نقی پس وقا وقیا وقو وقت وقتا و کینا و و وقیتو و وقیتو و و وقیتو و وقیتونا وقیتو وقاین این ماضیش هست مضارعش خودش آورده امر از تقی درست میشه امر حاضر همیشه از مزاره حاضر مزاره حاضر تقی هست اگر یادتون باشد گفتیم امر به چه ساخته می شود یک علامت مزاره رو برمی داریم اگر بعد از حذف علامت حرف بعدی کمون فعل فعل هست یا فعال فعل نیست مثلا در ناقص امر فعل هست هر کی باشه مهم نیست بعد از این که علامت مضارع و حرف کردیم اگر حرف بعدی ساکن داشت همزه وصل می آوریم اگر ساکن نداشت همزه وصل نمی آوردیم در تقی ترک برداریم قافر خودش حرکت داره پس نیازی به همزه وصل نیست می ولی از آن جای که امر مبنی بر حذف حرف عله حرف الله رو که حصف کنیم فقط یک حرف مونه قاف مونه میشه قی امر حاضر تقی قی هست چرا؟ چون علامت مزاره دا علا رو که از ابتدا برداریم آخرش هم که حرف الله رو باید حصف کنیم در ناقص این قاعد رو خوندیم که در امر و در مزاره مجزوم حرف الله چی میشدن؟ حصف میشدن پس قی خالی میموند فیاسی رو علا حرف واحد میگه فقط یک حرف باقی مونه در ها والزم الهاو فی الوقف لزو زمانی که در وقف باشه لازم هست که روش ها بیاریم این در بحث وقف هم در کتاب نحوی توضیح داده میشه چون تنها هست پس های روش بیاریم میشه قه قیا قو پی قیا این امرش هست با نون قین قیان قیانی قن قیانی قینانی قینانی یا دوباره برگشت در مزاره در عمر بانون تاکید در سیخه اول که تنها بود یا حفظ شده بود یا دوباره برگشت بانون خفیفه اینجوری میشه قین قن قن مصنبی نداره با نون خفیفه مصنار نداریم و جن مونس هم نداریم. درست سیغه میبونه قن تن اینا رو در میزان در کتاب ساده‌تر خوندیم. این زمانی بود که برنامه رمایرمی بود. این جوری بود که توضیحش رو گفتیم اما اگر برمز فعلی اسعلو باشد که فقط بر این دو باب میاد درينا هالات مش ودية يوجة ودية ودية وجو مثل رزيار رزيار رزور ودية ودية ودين ودية وديتما وجيت وديتي وديتما يوجا يوجا يعني يوجاونا مثل يربا يربا يعني يرباونا إلى آخر صرف يربا صارف مشي مثال ادواف ناقص لفیف مقرون و لفیف مفروغ رو خوندین ولی دوتا موتل دیگه هم مونده چون گفته بود کتاب ما هفت موتل دارین اونی که فا و اینش حرف ایله باشند فا و اینش که البته در فیلها نداریم در اسمها مانند ویلو یوم یین چون اینجا قواعد خاصی وجود ندارد تولانی نمیکنن. کنم جز درس قبلی میگم و تمامش میکنیم مو، و وی چون فیلی نداریم بحث و تولانی نمی پس معنیم یام وی اینا موتلل فائی هستن در فیلها نداریم ولا یبنا منه الفیل فیل از این ساخته نمیشه هفت الموتلل فائی والعینی واللام اون کلمهی که هم فائش هم ایل حرف ایلا هم اینش هم لام و اون چی هست؟ اون حرف واب هست ما زمانی که و در عربی تلفظ کنیم میگیم واب میگیم چی؟ در اصل بوده و و و وا. ولی واب متحرک مقام مفتو تبدیل به علف شده شده واب شده چی؟ واب پس واو در اصل تا واو بودند ولی واو متحرک ما قبل مفتوح تبدیل به علف شده در یا در یا اصلش هم سه تا یا بودند یا اصلش سه تا یا بودند یا ی تبدیل به علف شده و حمزه هم و یای آخری بعد از علف قرار گرفته تبدیل به حمزه شده پس واب در از ستا واب بودن واب وسط به دلیل متحرک بودن و فتحدار بودن ما قبلش تبدیل به علف شده شده واب و یا, یا, یا ستا یا بودن یای وسط تبدیل به علف شده و یای آخری تبدیل به همزه شده دیگه مسئله دیگه ای در متلات نداریم متلات همینای بودن که خوندین موفق و پیروز باشید